حليم همیشه زینت هر دفت بسم الله حليم جه همر پرورست بسم الله مدام عرد و زاران فرق دشمن دی که زلفغار علی برسرست بسم الله من غلام شاه مرغانم شکم دارم دیگه من غلام شاه مردانم چه غم دارم دیگه در دو عالم هم سلطانم چه غم دارم دیگه فردا از دی تو چنو جانم چه غم دارم دیگر او تو شهر سلیمان چه غم دارم دیگر بنده سلطان خوبانم چه غم دارم بگو او شکر را منانت شاکران هیدرام تاج الزار بر فرق شاهون خاک پای قنبارم چون علی مولا و ورد بر هر دو عالم ره از بیم و حساب و حول روز مخشرم من که از جون عاشق آنم شگام دارم دیگه شکر اللله فدات بار مولازدام من مولا زدم مهره مهر مهر مرکزارو بدل شیطان زاده پوشیده بار اگر ہمیں دنیا کو معافی از هردو آلم را بطار موی او سودا زدم همشو موی او پریشانم چغم دارم دگر علی سالماه روز و شب ورد زبانم یا علی هرچه میگویم همه نطف زبان آتش یا علی بول گلزار ایشانم شکام دارم اون انشان شاهی یک نام گرامه آگش مرکزا نام او مشخص ز نام ما سفره تیغ دو پیکار هیدار خیبر گشوار یازده فرزند اون در هر دو عالم رهنماست من که خود او را سناخانم چه دارم دیگه علی جون اون که از روز ازل شد عاشق روح الامین اونکه که از سر پنجه او شد مخمس یابوسین باعث ایجاد خلق اولین و آخرین لا فضا الا علی فرمود رب العالمین من قلامه من قلامه شاه مردانم شخام دارم دگه؟ چون وجود نازنینش لنگر افلاک شد ای از بس ذاتش قصه لولاک شد هم بزاتش پشت کوتا پایه اورا شد هر که مهرش را ندارد کافره بیباد شد علی عاشق رخسار جانانم چقم دارم دیگر علی علی علی آ علی من که عشق علی پر بول دل کاری می جان بر دل چه زره ہر اللہ کے خان چار میزان اندال دے او صابے ولی اللہ اکبر میزان پشت پر بر فرقہ شیخ ابو苏 بے سلم میزان آ تا سر غرق اسیانم چغم دارم دگ پشت پا بر فرق چیک کااووس و دی می سر میزنم پایتا سر غغ اسیانم. شقام دارم دکار نور رویت از رسول تاجدار آمد فدیب رشته فقر تو اندر خاکسار آمد من دید مند مفتاجی تو اندر نوبهار آمد و دید من از جمع فقیرانم چه دارم دگر من از جمع فقیرانم شقم دارم دیگر علی جو خالی نہ تھو به نہ تھو که فردا چه بازی کو رات روزے علی دستی دستی به کار زن و گل کم کن روزگار تا بر مراد تو شود این چرف کهن کار آیا امید تا بر مراد تو شود این چرخ کو نکار سک با زبون به زخم تنش میزند دوا سک با زبون بزخمه تنش می زناد ذبو ز سکسیست که زخم زبون زناد علی علی علی حق علی این نور خدا در نظر بس روی تمارا ای نور خدا در نظر از روی تو مارا بذار که در روی تو بینی خدا را تا نه خاچه جون باشه تو هم راه سبا خاصیت عیسی خاصیت عیسی دم بود صبر آده هرگز هرگز هر گیز هر اثری بهتر از این نی دو چه خوبون همه در راه تو خاکن مولا هر چه همه در راه تو خاکن پیفست چه برخاک نهی اون چفه پارا علی میخوف قرب می آسوده قرب از سودا دیکھو جی پیش نہ علی بالائے چنگا Bharat ki, مجار حرف بفار در لوح تو ننگش مجار حرف بفار علیجو. چریار گریار کنت میل آجابی نیست دریار خونه آگت میله نیست شاهونش آجیا جرب نبوسان جدایا شاهمون چه عجب جربه نوازن گدار حلی نوشته بردار جنات به خط سبز جلی شفیعه روز قیامت محمد است و علی علی علی, علی, علی, علی, علی, علی, علی آی علی آدید آدید ای که از یار نشون می یار کجا ای که از یار نشون میثال یار کجا همه یارم ولی یار وفادار کجا همه جاره ولی وفادار کجا ها نپرسن به خوبون دم دل ها نپرسن به خوبون قم دل, دل نتبون گفت ور بپرسن به دون قوت گفتار خجا چون که دارد خانه بیرانه دل هیچ نمود خواب در دیگه هم دیگه بیدار کجاست علی That's <inaudible> how اخترانند به جا آلا علی سر خود فاش مکن سر فاش مکن محرم اسرار سر خود هاشما كون محرمه اسرار قیاس אביچو مولا جون بالاتر از آنی که بگویم چون کن حاجت گرام به خواهی خون کن من صورتمو ز عیب خود بی خبرم الله من صورتمو ز عیب خود بی خبرم الله نقاش توی عیب مرا بیرون, داره داره داره بیرون کن یاره نازک بدنم ترک که تر من یاره نازک بدنم ترک من شیده کرد دید بیچاره شدم یاردگر پیدا کرد مولا دید در کسای من سیم و زری پیدا نیست حصل خود برد به بازار دیگر صدا کرد علی جون وندام شب <موسیقی> سنگ مر افتاد بدنم تار خون نمایت از بحر شهادت این من, من بنفتی الله و محمد و علی